سلام على الحسين وعلى علي ابن الحسين وعلى اولاد الحسين وعلى اصحاب الحسين شب عاشورا است خلقت از دور الله الحسين است جن و ملک بر آدمیان نوحه میکنند گویا ازای اشرف اولاد آدم است اون تا سنگینی مصیبت امشب بر دل پیغمبر اکرم است سنگینی مصیبت بر دل فاطمه زهراست بر دل امیر المومین امشب سنگینی مصیبت بر دل اون کسی است که لندو بند با هن و مسا و لبکی انه بدلت و ادما فرمود جتا یا حسین هزار نبودم به روز آشورا که یاری تن مایم به دشت کرب و بلا ولی تلافی آن می کنم به صبح و مثال فی نکفی کل حال یا جدا به کربلا چون نبودم کنم ترا یاری ولی شام و سهر می کنم از دیده خون عوض اشک میکنم جاری لند و کل حال یا جده امروز امشب تا به مصیبت بر دل امام زمانی الله گوشه چشمی با اون چشم کن بارشون به این مجلس داشته باشند در این شب ختم مجلس امضا کنن قبول کنن ما هم نیت کنیم خدایا این گریه ها این ناله ها این نوکری ها ثوابش صرف تأجیل فرج آقامون بگردد شرط ادب را به جا آوریم جهت جلب توجهات و عینایات خاصه امام زمان به مجلس و محفل تسلای قلب داغدارشون تأجیل فرجشون سلامتی وجود و مقدسشون صلوات و رای تقدیم کنیم بحث دیشبمون چون ناقسمون در حده پشت دقیقه ای بحث رو تکمیل کنم و شب روزه است عرض شد که یزید وارث حکومتهای قبل از خودش بود همه این ظلمها و جنایتهایی که در کربلا مرتکب شدن از قبلی ها مخته بودن و اصولاً حکومت شاخصه اصلیش و فلسفه اصلی حکومت کلمه ادالته یعنی حکومت ها میان تا عدالت را اجرا کنند حکومت ها میان تا ظلم نباش حکومت ها میان تبعیز نباش رضا ما هم وقتی برام اهل بیت علیهم السلام امام زمان رو معرفی کردن که فرزندمون مهدی میاد حکومت جهانی تشکیل میده خب برای چی میاد این حکومت جهانیش فلسفهش چیه اولین کلمه ای که اهل بیت ما یاد دادن از حکومت امام زمان یملع ارز قسطا و عدلا پسرمان مهدی میاد برای ادالت برا قسط اما اونچه که تو حکومتهای قبل از یزید تو دستگاه خلافان خلافان نبود بحث ادالت بود پر از ظلم و جور من ارز کردم با زنها در طول تاریخ ابو بکر و چگونه تعامل شد با مخالفان حکومتشون به اسم ارتداد همه رو میکشتند با کودکان چگونه برخورد میکردن. امشب یه تتمهای و اون اینکه اینها بزرگان مملکت رو هم تحمل نمیکردن. یه روحیه ظالمانه است که اولی دومی سومی معاویه هیچ بزرگی رو تو مملکت در عرض خودشون در سطح خودشون میکنم باید من مطرح باشم فقط تو این مملکت اسم من باید به بزرگی یاد بشه تو تاریخ خلیفه قاسب دومی داره یکی از پادشاهان غسان آل غسان نام جبلت ابن ایهم نامه نوشت به عمر ابن خطاب که من میخوام بیام مدینه اجازه هست مسیحی بودن به بلاد قسان سکنا داشتن اجازه گرفت و آمد از قرآن و کلمات که از پیغمبر نقل شده بود دریافت که این همون پیغمبری است که تو انجیل اسمش بشارت داده شده یعنی من بعد اسم او احمد مسلمان شد و 500 نفر از آلغستان رو هم با خودش آورد مدینه مسلمان شدن ساکن مدینه شدن خب بزرگی پادشاه بود یه روز تو مسجد بین همین آدشاه تازه مسلمان شده آلغستان با یکی از دوربریای عمر حرفی شد اختلاف نظری پیش آمد عمر بلند شد جلوی چشم این جمعیت حاضر در مسجد یک سیلی محکمی به صورت این جبلت ابن ایهم تازه مسلمان بی دلیل چون با رفیق من حرفت شده خودشون نوشتن تبری و دیگران این آدم قهر کرد فردا همین پونست نفرشو کم کرد از مدینه رفتن مرتد شدن گوه اسلام اینه رهبرش اینه من نمیخوام. این بیعدالتیه. این اسلام دین ظالمانه است مرتد شد مسیحی شد دوباره برگشت به تایفه خودش نوشتن تو مسجد نشسته بود دومی یک دفعه جارود ابن آمر وارد شد رئیس قبیله بزرگ قبیله ربیه است خب، هم هست تا یه بزرگی وارد میشه چند نفر پچه پچ میکنم فلانی هم آمد فلانی هم آمد چند نفر گفتن بزرگ قبیله ربیه آمد بزرگ ریشسفید سفید قبیله ربیه آمد عمر بهش برخورد چرا به غیر از من از کس دیگری به بزرگی یاد میکنن شلاغش رو مرداش بنده خدا رو کتک زدم <تصفح> گفت من که گناهی نکردم اگر حرفی هم زدم مردم زدم منو به بزرگی یاد کردم من گناه هم چیه منو شلاق میزنی گفت زدم از این به بعد جلوی من کسی قد علم نکنه مردم بفهمم بزرگی این مملکت منم یه روحی ظالمانه ادامه داشت تا جایی که برای مردم عادی شد که خلفا نباید کسی در مقابلشون قد علم کنه یکی از این ارس هایی که من ارز کردم یزید همه رو از قبلی یا به ارس برده بود آله هاشم چرا توی این مملکت محترمن چرا بنی هاشم جلوی ما عددی هستن چرا حسین ابن علی تو چشم مردم شخصیتی خلیفه منم حاکم منم چرا حسین ابن علی را مردم کسی می این نگاه ظالمانه درد امیرالمؤمنین هم همین بودا یه وقتی آقا تو اوج قدرت خودش زمان خلافتش فرمود اوف بر این روزگار اینقدر من علی بن طالب را پایین آورده پایین آورده پایین آورده این مسلمان‌ها میگن تو این مملکت دو تا شخصیت و رجل سیاسی وجود داره علی و معاویه منو با معاویه مردم یکی حساب میکنم حالا او اوج خلافت امیر بود خلافت به دست اینا که افتاد اونم تحمل نمیکردن که بگن علیون و معاوی فقط ما خب خشونت تبعیز و ظلم ویژگیهای های این نوع حکومت هاست که از ابو بک شروع شد تا به یزید ادامه داشت. لذا یک جور حسادت، یک جور بغل، یک جور عدم تحمل نسبت به سیدالشهدا تو دل این پلید بود. این خاندان باید برن این محبوبیت باید بره کسی از اینها نباید باقی بماند کم کنم جمله تمام عرض دو شب من این بود یزید وارث سیستم حکومت های قبلی بود تا جایی که امشب باید تو صحرای کربلا زن و بچه عبا عبدالله اولاد پیغمبر تو محاصره باشه قروب روزی که گذشت غروب روز تاسوعا وقتی اما نامه رو رد کردن پسران رشید و ملبنین سلام الله علیها عبا عبدالله حسین جلوی خیمه پیشانه گذاشتن رو دسته شمشیر علام شمشیر یک لحظه چشاشونو بسته بودن دیدن خواهرش زینب آمد با گریه برادر صدای اسب میاد صدای پای اسب میاد نکنه اینها قصد حمله دارن به ما ابوالدلال حسین چشماشو باز کرد فرمود خواهرم زینب یک لحظه چشمام رو قاب بود چتم پیغمبر رو دیدم فرمود حسین زود بیا ما منتظریم تا خبر شهادت رو خواهر شنید داره سیلی زد لطمه به خودش زد حسین جن خبر از مرگ خودت میدی خبر از شهادت خودت میدی خبا عبدالله حسین آرام کرد خواهر رو با نصیحت با دلداری یه جوری خواهر رو آرام کرد خبر فضل رو صدا کرد به نفسی انتال عباس گرکم به نفسی ان پدرم فدای تو اول ابلفض نه جانم فدای تو جانم فدای تو سوار سوارشو برو ببین لشکر از ما چی قصدشون چی آقا با سی نفر رفتن جلیه لشکر رو گرفتن نزدیک خیمه ها نشن حرفتون چیه؟ گفتن یا الان آماده جنگ باشید یا الان تسلیم بشید ما شما رو ببریم کوف نزد ابن زیاد فرمود بیستید تا برم از قربابم مولایم حسین ابن علی جواب بیارم راهیر ابن قین و حبیب ابن مظاهر با این سی نفر مشغول خطاب خواندن و گفتگو با این مردمان جلوشونم گرفتم نیاد قمار بنی هاشم آمد خدمت آقا آقا اینجوریه فرمود اباسم اگر بتوانی یک امشب را برا من مهلت بگیریم میخوام یه امشب شب آخر عمرم راز و نیاز کنم با خدا جوونا نماز بخوانم قرآن بخوانم خدا میداند من از نماز سیر نشدم خدا میداند من از قرآن سیر نشدم میش از دشمن مهلت میگیری برا چی برای نماز خواندن آمد قمر بنی هاشم خبر رو داده رفتن تو لشکر فرماندهی و مرسد اون ظالم با اطرافیانش مشورت کرد حسین از ما مهلت خواسته بدیم یا الان حمله کنیم امر حجاج گفت امیر اگر این حسین پسر پیغمبر نبود این لشکر دیلم بود این لشکر کفار بود ما یه شب محلت میخواستن بهشون میدادیم این پسر پیغمبره چرا نمیخوای یک شب مهلت بهش بدیم بعضی گفتن امیر تو که حسین رو میشناسی این یک شب مهلت رو بدی این فرار نیست فردا میاد به جنگت با حسین رو میشناسیم چرا نمیخوای مهلت بدیم تصمیم گرفتن یک شب. محلت رو بدن به آقا عبدالله لحسین اما این شب آشورا چه گذشت من دو سه نکتش عرض بکنم اولین کاری که کرد آقا جمع کرد همه فرمود برید از این صحرا از این تاریکی شب استفاده کنید برید بعدونی که دل شما رو خیلی آتیش میزنید فرمود هر کدام از شما حساب دستی یکی از مردان بنی هاشمم من بگیرید با خودتون ببر. برید تو این رسته ها تو این شهر ها پنهان بشید تا فرج حاصل بشی. اینا اگر منو بگیرن به من دسترسی پیدا کنند دنبال شما نمیان. اینا با من کار دارند. اولین نفر قمر بنی حاشم شروع شد با گریه و ما دست از تو بردن. میگم جوانان بنی حاشم تکرار میکردن. اصحاب را جز خانده. ایلام آمادگی کردن برگشتن به خیمه ها، شب شروع شد یه جملاتی از امشب از اهل بیت نقل شده یه جملاتی از اصحاب نقل شده من خوب عرض کنم مقتل معتبری که معمولا روزخونهای ما مادهین ما مخونه نو از خود اهل بیت نقل شد از کتابهای تاریخی خیلی دنبالش نبودن. برخی از این قضایای امشب و فردا رو امام صجاد علیه السلام نقل کرده خودم دیدم اینجوری شد برخییا رو امام باقر علیه السلام نقل کرده چهار سالم بود در کربلا بودم قضایا رو نقل کرد قضایه مثلا قارت و آتش زدن و نوعا از فاطمه بنت حسینه دختر سید و شهده. اینجوری ما رو میزدن اینجوری ما فرار میکردیم به بیابان اینجوری خلخال از پای امم کشیدن اینجوری من افتادم قش کردم نمیخوام روزه بخانم انایت بفرمایید برخی از قضایای امشب و فردا و قصد آشورا از زینب کبراست چراوی معتبرتر از زینب دختر امیرالمؤمنین؟ المومن قسمتی هم امامان بعدی نحق کردن امام صادق علیه السلام امام رضا علیه السلام ناهیه مقدستم که آقاتون صاحب الزمان زمان خونده دیگه روزه خونده چجوری زلکناخ شیه زنان میآمد به سمت خیلال بگم اینا تاریخ نیست نه کلام معصومه کلام علبیک این که میخوام ارز کنم از امام سجاد علیه السلام امشب شب آشورا تو خیمهم تو بستر بیماری امم زینب کنار من بود مشغول مراقبت از من بود بابام یه وقت آمدن به خیمه حال منو پرسیدن یه مقداری تفقد کردن نشستم بعد بلند شدم تشریف بودن خیمه بغلی جون غلام عبیزرم که قضیهشو گفتم قصه‌ی شهادت انصار با بابام همراه بابام مشغول تیز کردن شمشیر و اصلاح شمشیر نیمه شب یه وقتی دیدم صدای بابام میاد از خیمه بغلی یا دهر افل لکم این خبر مرگ تو بین عرب ضرب مسئله ای روزگار اف بر تو با هیچ دوستی وفا نکردی با هیچ کس به پایان نرسند گفت این خبر مرگ و شنیدم از بابام گریه اما به خاطر گریه نکردم من بادا امم بشنوه امم طاقت نمی یه وقت بابام دوباره شعر رو تکرار کرد یا در افتن لکم خریدی تفریه دوم اما جانم زیبم زینب شنید تا شنید بابا خبر مرگشو میده بلند شد از کنار من چادرشون کچان کشان رفت کنار بابا لطمه به صورت میزد و من بمیره زینبه داری از مرگت خبر میدی داری از شهادتت خبر میدی اینقدر قدرم من بکنش لطمه زد غشی علیها افتاد غش کرد اونایی که اشکال میگیرن این مقتل روایت شده از امام سجاده یی ام جانم گریبان چاک کرد جانم به صورتش لتمه زد جانم از شدت مصیبت افتاد غش کرد بعد بابام خواهر رو به هوش آورد شروع کرد به دلداری دادن زینبم اهل زمین میمیرند اهل آسمان میمیرند جدم پیغمبر از من افضل بود از دنیا رفت پدرم امیرالمؤمنین از من افضل بود رفت مادرم فاطمه زهرا برادرم امامحسن مجتبی همه از من افضل بودن رفتند زینب صبر تو از دست ندی خواهر یه جمله زینب گفت دل من آتش زد گفت برادر تو رو به قتل صبر میکشه که انمو از این شعر استفاده کرده برادر تو رو میکنه قتل سبر بولیم که کسی رو دور رو بگیرن هیچ راه نجات نداشته باشه زجرکشش بکنه گویا برخی پرنده ها رو اینجوری زجرکش میکردن کو با گریه گفت برادر یعنی تو رو اینجوری زدگوش میکنن دوربرو تو توی میکنن هیچ راه نجاتی برات باقی نمیزنه از هر طرف میزنن آرام کرد خواهر رو به هر نحوی بود زینب برگشت کنار خیمه من مشغول مراقبت از من یه نقلی هم داره راجب قضایه های شب آشورا این از نافه از اصحاب ابا عبدالله حسین. و نیمه های شب یه وقتی دیدم آقا از خیمهش خارج شد رفت پشت خیمه تنها نگرانش شدم آقا تنها تعقیب کردم پشت سر آقا یه وقت دیدم کاهی خم خب میشه چیزایی از رو زمین برمیده رسیدم نزدیکتر فرمود ناف تویی گفتم بلا چرا آمدی گفتم آقا نگرانم دشمن این حول اطراف زیادن تنها اومدی اومدم تنها نباشی بعضی از مقاتل نوشتن فرمود نافه کمکم کنی خارها رو از پشت خیمه آجم یعنی فرزاست بنات دخترم رو غیبت خارها دخترانم خواهرانم تو آتش زدن خیمه ها اواره این بیابان بشن این سنگ خانه ها رو کمک کن از رو زمین جمع کنیم بسی اینجور نوشتن آقا موازه رو بررسی کرد دقت کرد برگشتیم آقا تشریف بردن به خیمه خواهرش زینب من دیگه به احترام زینب داخل خانه نرفتم داخل خیمه و نامحرمم دختر امیر المومنین استادم بیرون خیمه اما شنیدم زینب داره اظهار دلنگرانی میکنه به برادر فرمود برادر تو از نیت یارانت آگاهی حسین من مطمئنی همی هفتاد و دو نفر فرداتو رو تناله میذارم برم فرمود خواهرم این عاشق شهادت مثل طفلی که عاشق پزدان مادره نگران نباش نافه میگه دل من عاشق بباشد خدایا دختر علی از ما نگرانه <تصفح> <تصفح> <تصفح> چکنم کنم آمدم خیمه حبیب ابن مظاهر گفتم این بزرگ انصاره پیرمرده گفتم حبیب زینم نگران ماست گفت چرا گفتم اینجوری از حسینش میپرسید زینم نگرانی نتردن نکنه فردا ما حسین رو رها کنیم بری یه کاری بکن گف حبیب گف خدا قسم اگر حسین ابن علی الان جازه بده ما شمشیرها رو میکشیم حمله میکنیم گفتم نه حبیب متوجه نشدی چی دارم میگم باید بریم جلوی خیمه زنها مقدرات بهشون قوت قلب بدیم گفت همه انصار رو در شب صدا کرد حبیب ابن مذاهر شمشیراتون رو وردارید بریم زینب نگران ماست باید دل زینب رو آرام کنیم امیشه آمدن جلوی خیمه مقدرات دختران پیغمبر دختران علی به خدا تا جان در بدن داریم تا شمشیر تو دستمون شما رو تنها نمیذاریم و رو تنها نمیذاریم تا این نیزه ها در دستمون از شما هدای حمایت میکنیم آقیون و علما. هیاتیو اهل بیت مخدراتشون به این سادگی نمی آمدن از خیمه بیرون اما مقاتل نوشتن نمیدونم چه غوغایی بود چه نگرانی بود دیدیم همه مخدرات پوشیه بر صورت پوشیده بیرون آمدند، خیمه گفتن خدا از شما راضی باشه که ما رو طلا نمیشه شما رو به خدا تا هستید از دختران پیغمبر دفاع کنید از اولاد علی دفوع کنید یک جوری حرف زدن همه انثار به گریه افتادن میگم افت روزگار اوف بر روزگار کار زینب بنت علی به جایی برزد که از مای انصار قوت قلب بگیره نیاز به کمک ما داشته باشه شروع کردیم همه انصار بلند بلند گریه کردن هی hey, امشب داره میگذره مشغولن اصحاب بین راکن و ساجدن یک عده در رکوان یک عده در سجدن یک عده قرآن میخونن نزدیکی های سهر یه لحظه عبا عبدالله حسین فرمود خواب چشمم رو رو بود چند لحظه چشماشو باز کرد فرمود تا عالم رویه دیدم این دشت کربلا دریای خونه سگهای های در رنده دارن منو قطع قطع میکنم اما بینشون دیدم یه سگی خیلی نسبت به من در رنده تره وحشی تره دو رنگ بود برز بود قاتل من مرز برز داره پوست رنگش دو رنگه های اون شمرم همینطور بود قاتلشم مشخص کردم با عبدالله الحسین بعد فرمود صدای جددم رو شنیدم فرمود حسین امروز افتار مهمان من یاران من آماده شهادت باشید آقیون شب گذشت و روز آشورا رسید هرچی بود شب گذشت ده شبه داری برای اصحاب گریه می کنی برای علی اصغرش برای علی اکبرش برای فضلش برای قاسمش برای طفلان زینبش گریه کردی اما امشب شب خود هم عبدالله لحظه ایم <تص> رزید غریب زهرام به زینبش زفانش کرده بود زینبم بگو خانما از خیمه ها بیرون نیا تا من زندهام بمانید اونجا از خیمه ها بیرون نیاید زینبهم اجازه نمیداد مخدرات از خیمه ها بیرون بیان یه وقتی دیدن صدای آقا میاد بیاید بیرون فنادا یا زینب و یا عم کلسوم یا سکینه یا رباب یا رو غیه. و حاضر آخرال اجتمادی که منم دارم میم بیایید بر خدا بزید همه ریختن بیرون خیمه چه وضعی بر باشد آقا تا تو بودی خیال بچه راحت بود آقامون دشمن به خیمه ها نمیاد هر کس یه جوری ناله میکرد یکی هرز میکرد ابتا ردنا اله حرم جدنا رسول الله <تصفيق> بابا تو بریم ما بیان سی هزار نام حرم چیکار کنیم بابا ما را برگردن به حرم جدمون پیغمبر به مدینه ورمون دخترم لوتر گل قتال نام اگر میگذاشتم ما تو خانه خودمون منده بودیم اینا دست بردار نیستم یکی جلوی زلجناه رو گرفته بود دست زلجناه و بغل کرده بود بابا نمیذارم بری ما رو تنها بذاری اما چجوری سوار زلجناه شد کجای روزه رو بگم امشب صاحب از زمان قلبت میشب داغ روی داغ آیون تو هر سفری که سید میرفت علی اکبر مرکب رو می افثار رو میگرف آقا سوار میشد شاهانه اما یه وقتی آقا میخواد برای ودای آخر سوار زلجنه بشه دیدن دیگه کسی براش باقی نمونده زینب کبران متوجه شد اومد جلو برادرم بی علی بندی خودم میگیرم خودم افثار از رو میگیرم در بیکس نشدی برادر. برادر بیلشگر شدی آدم نداری اگر اجازه دهی صف کشیده در پیتایی اگر اجازه بدی زن و بچه رو میارم پشت زن که ابن سعد نگوید و سپاه ندارد دشمن زخم زبان نزنه بگه و زندگی تنها مونده بیلشگر مونده زینب سوار زلده کرد حالا دختری جلوی زلجنه رو گرفته بابا نمیذارم بری <تصفيق> یه جوری دیگه او رو آرام کرد شب بوم براتون گفتم رقایه که آرام نمیشد او رو هم با وعده دیدار آرامش کرد رقایه یه روزی میام بدیدنه تو خرابه شام میام بدیدنه همه رو آرام کرد تنها کسی که نمیشه آرامش کرد زینب کبرا است زینب آلمه غیر معلم هست زینب میدانه حسینم بره برنگرده یعنی چی زینب میدانه شهادت و خدا خداسر بالای نهزه یعنی چی زینب میدونه بعدش اسارت کوفه از بعدش اثارت شامه چون امیرالمؤمنین به زینب گفته بود شب بیست و یکم وقتی آمد بالا سر بابا شروع کرد گریه کردم بابا خبر از مرگت دادی داری وصیت میکنی گریه کرد بابا آرامش کرد زینب یه جمله گفت شب بستوی کن ماه رمزان مجلس به هم ریخ گفت ابتا تو من من ام من حدیث کربلا بابا از ام ای من شیدن. من یه کربلایی در پیش دارم حسینمو پاره پاره باره, باره میکنم سرش رو با اللهی در یک نظف روزیش در جوان آشمی رو سرزدن جدا میکنن همه شروع کردن گریه کردن امیرالمومنین بهش خبر داد زینب هر هرچه امه من گفته الحدیث و کما حدست که امه من هرچه گفته درسته اما یه چیز رو امه من به تو نگفته اونم خودم میخوام بگم تو این شهر کوفه که امروز شاهزادهای زنان کوفه ب... افتخار میکنن به زینب دختر علی سلام دادیم جوابمون رو داد زنها هر جا میبینند. به احترامت بلند میشن زینب هم بعد کربلا سوار بر قاطران واریان ترا در لباس عزیری وارد این شهر میکنن زینب به همه حلم داره رضا آرام نمیگیره لذا دست دست و بر نمیداره دیگه هر چیز سنگ با دلداری با تفکتی زینم آرام نمیشه روحش داره از بدنش خارج میشه دیگه ناچار متوصله به معجزه شد دستش رو گذاشت رو سینه زینم آرام کرد این زینب یاد مونده بود. یه جمله مخوام بگم انشالله روزه فردا رو عزیزم آجای قاسمی بکنند. من دیگه وقتم تمامه اما امشب پرچه امام زمان رو یادتون نره دونه ای مردم دونه آقا یاد این خون انتقامش رو زمینه تا آقا ما به زمان یاد انتقام دستانه بسته همه دانش زینم روی زمینه این زینم بوده بود که <تصفيق> من به حال مرگ افتادم دست و زینم شفا بخشه دست و زینم روحو به بدنم برگردون یه جایی دیگرم زینم به حال مرگ افتاد روزام. اونم روز یازدهم، آمد سنگ رو کنار زد آمیدو. شمشیر چکسته رو کنار <تصحق> <تصحق> <الحن> <تصحق> یک بدری دید بی سر،, بی سر. <الحن> یک بدری دید به حال سجن افتاده افتاده <الحن> <الحن> <الحن> <الحن> <الحن> <الحن> <الحن> <الحن> به حال مرگ افتاد یه لگا کرد به این بدن فرمودن ترکیم بخانم حسین باشتان باشت یزمون یارد کنده حسین خنجر یردی نیزم و پی کنده حسین حسین بی غسل و کفن حسین ترا ندادن حسین ترا کفنت نکردن بی غسل و کفن من دو زینیم و زینم مسلمانو قصرش میدن مسلمانو که من میکنن اینا دو رو مسلمان نمیدانن همه اینها رو تحمل میکنم برادر همه اینها رو تحمل میکنم اما با یه قصد چکند زینبت بوشیم رو سنانی لنجش آمکت امت بوشیم رو چنان چی من چه باقی سیری برم با سی هزار نامهرم چی جوری تا گوه برم بوشیم رو yanıla ne de şam dedim <Sessim> ben katil yüzü gör mehmet erasan dursenim çehl manzel hey çeşmemı vazgına hey vay katil yü türlüye çeşmem benimim katil yüzü gör mehmet erasan dursenim dü kardeş o yola sal kardeş dü bacun yola sal dü bacun dalı زینب به حال مرگ گفتاد خدا یا چه کنم من تو این صحرا بمیرم علم اول فضل کی میخواد تا شام ببره من تو این صحرا ببینم حسینم وزیعت کرده از این یتیمه ها تو مادری کن سربرستی کن زینمم باید بمانیم، باید تا گوفه بری باید تا شام بریم یادش افتاد زبان حال ها مختل نمیتونم گفت یادش افتاد دیشبم به حال مرگ گفتادم روز دست برادرم اومد رو سینم. روح به بدنم برگش آمادهی بگم و واگذار کنم الانم دست برادرم رو بر می دارم سینم دل دلم آرام می گیره. دست برد به بدن برادر دید هر دو دست برادر رو ساره بار <تصفيق> برادر دست در بدل ندارد انگشت و انگشت در ندارد اینجا بود دست رو اجلش گذارد رو کرد به مدینه یا رسول الله صلی علیکم علیک و سمام آزا حسین و کبله را مغده و لحظا و و لما کسب و <تصفيق>